هفدهمین عادت زده تنبلی از ها شروع کنید. باهانی که از میان می رود. احساس استیصال می کنم و بیش از حد بر سرم ریخته است. در روانشناسی اصطلاحی تحت عنوان شکاف احساسی گرم و سرد وجود دارد. خلاصه این ایده از این قرار است که وقتی شما در موقعیتی آرام و سرد باشید، تخیلتان به شما اجازه نمی دهد تا خودتان را در وضعیتی که احساسات گرم از قبیل خشم یا ترس بر شما قلبه کرده تصور کنید شکاف احساسی گرم و سرد به این دلیل باعث به تعویق افتادن کارهای شما می شود که وقتی هنوز کار را شروع نکرده اید به دلیل اینکه هدفتان را دست نیافتنی می بینید حتی از شروع آن پرهیز می کنید اغلب اوقات وقتی شما هدف بزرگی برای خودتان تعیین کرده اید مثلا یک ساعت نوشتن در روز ایجاد نیروی ارادی اولیه برای آغاز کار در شما دشوار است. وقتی هم که این اتفاق میافتد شما بهانه میآورید که این کار شما را می کند و برای انجامش به زمان بیشتری نیاز دارید. لئو بابوتا در وبلاگش راه حل سادهی برای این مشکل ارائه داده است. او میگوید به جای اینکه نگران سختی و حجم کاری که پیش رو دارید باشید از جزئی ترین قسمت آن شروع کنید و سعی کنید آن را به یک عادت روزانه تبدیل کنید. مثال فرض کنید هدف شما این است که روزی هزار کلمه بنویسید. این تعداد کلمه برای شمایی که هنوز شروع به نوشتن نکرده اید می تواند ترسناک به آید. اما به هر حال اگر از کوچکترین ها شروع کنید ابدا سخت نیست که هفته اول کارتان را با نوشتن 100 کلمه در روز بگذرانید. حالا دیگر وارد فاز گرم انجام کار شده اید و می توانید مثلا در هفته بعد به طور متوسط 200 کلمه بنویسید اگر به همین ترتیب ادامه دهید در هفته دهم ده موفق شده اید که روزانه هزار کلمه بنویسید شروع کردن از کوچکترین ها حتی در مورد فعالیت های روتین تثبیت شده نیز کارآمد است اغلب اوقات شما به طور ناخودآگاه در برابر انجام دوباره فعالیتی که تا کنون یک میلیون بار انجامش داده اید مقاومت می کنید. راه حل این است که به خودتان قول دهید بخش کوچکی از این کار را انجام دهید و پس از آن رهایش کنید. اما مهم اینجاست که وقتی وارد فاز گرم انجام آن فعالیت شدید، دوباره در میابید که انجامش آنقدرها هم بد نیست. من همیشه از این روش برای انجام عادت دویدنم در روزهای سرد زمستان استفاده کردم. پیدا کردن انگیزه برای دویدن در محیطی سرد و بیروح دشوار است. پس من به خودم قول می دهم که فقط از خانه بیرون بروم و چند مایل بدوم. و اتفاقی که می افتد این است که در دومین مایل دویدنم خلقم طوری می شود که دیگر به سردی هوا اهمیتی نمی دهم. اجرای این عادت شما می توانید هر فعالیتی را به اجزای کوچک تقسیم کنید و کارتان را با کوچکترین ها شروع کنید. بدین ترتیب حتی اگر حال و حوصله انجام آن فعالیت را نداشته باشید، ساختار فکری شما به نحوی تغییر می کند که به آن را تا به آخر ادامه دهید. در اینجا به چند راه برای آغاز با کوچکترین ها اشاره می شود. یک عزمتان را جزم کنید که یک عادت خاص را روزانه و بی به وضعیت روحیتان انجام دهید. دو یک نتیجه کوچک اما قابل اندازه گیری را که از این عادت حاصل می شود در نظر بگیرید. سه در هنگام آغاز کار بر روی این هدف کوچک تمرکز کنید. چهار هر هفته مدت زمان درازا یا کمیت فعالیتتان را افزایش دهید. پنج تصمیم بگیرید که حتی اگر حالتان خوب نبود یا وقتش را نداشتید باز هم آن فعالیت را انجام بدهید. اغلب اوقات پیدا کردن انگیزه برای انجام فعالیت‌های چالش برانگیز دشوار است. راه حل سریع این مشکل آن است که تصمیم بگیرید کارتان را از کوچکترین بخش آن فعالیت آغاز کنید تا نیروی ارادهتان برای انجام ادامه‌ی آن تقویت شود. کافی است عزمتان را جزم کنید تا همیشه بی اعتنا به آنچه اتفاق می افتد انجام فعالیت را ادامه دهید تا به نقطه‌ای برسید که انجام روزانه آن فعالیت برای شما تبدیل به یک عادت شود